را دست رسیدین ما مخصوصاً علاج دوای ماچو و اوندا خدمت ماچو شروع شد برحمان یا شد در بحث حیثیت خبر واحد یه سری مقالات رو نقد کردیم در اینکه حدود مسئله و اهمیت تاریخ مساله روشن بشه که ان فکر می کنم توضیحات ما بود. و چون در, در اصطلاح بحثه خودمون و مسئله برای این که بحث یک خارجی هم پیدا کنه به کلمات مرحوم استاد رضوان الله تعالی متعرض بشیم و در همون حول خوش مشغول بحثش بشیم. ارز شد که در این جلد چاپ جهد مصباح رو که شما سراسری شد دوست برن جلد دوی مصباح به استداه در این چاپی که دستان هست مرحث پنجم رو که ارز کردیم برای انتجام وقت مقمون شیخ انصاری در کتاب رسائل از کنم چی بود بود کتاب بعد عوض شد به هر حال از دوم رو که در زن قرار دادن اصل اولی رو بر عدم حجیت که زن گرفت دا. اون وقت متعرض مطلبی که خارج شده از این اصل اولی و عرض کردیم اینم که ایشون ملحظ خامس قرار دادن همون ترتیب شیخ انساری صحیحن پنج تا مطلب رو مطلب شیخ انساری در باب زن و برس کردن البته یکیش ذنیه یکیش نواس الاول حجیت ذهورات بود، حجت اول دومش بود. اجماع ثبون شفرت و قوی دوم شد. حجت اشما سوم، حجت شواهد فقهی، چهارم و حجت خبر واحد این که مرحوم استاد المدرس الخامس قرار همون هم منهج شیخ انصاری در بحث حجت خبر بالغ لواری رو، شیخ در ضمن ذمرات خود اون گذار دادن، پنج شده. این راجبه اجمال درس. مردم استاد از این صفحه ه این چاپی که به اصطلاح دست من هست تا آخر این صفحه ۲۸2 یعنی صدخورده صفحه را به بحث حوجیت خبر متعرض شده. م برای اینکه نره کاریشون روشن بشه که آقایون بتونن مفتاشونه. این کتاب سمون چاپ تبدیش عنوان نداره خوبه که انسان در حاشیه عنوان بزنه بهتر میشه برای این مطلب بحث اولیشون ایشون درباره این که آیا خبر واحد جزوی عباس اصول هست یا نه و چطوری ماید داخل در عباس اصول سوید این بحث تا حدود صفحه سبه هفته رو سه کلامی از شیخ انصاری شده تا صفحه و مناقشات اون تا صفحه 173 ندرخون دوده مثلا سه چار صفحه سه صفحه خورده ای این بحث شد اون وقت بدون تعرض به سابقه وحث و اقوال ایشون دو تا گوه رو در این مسئله عورده هم محوم اصداد آیخوی یکی منکرون منکرین حجید خبرواهد یکم مسجدین که به همین میادار اکتفاق رو و اول ادله مومشرين رو آوردهن از صفحه 173 که خودم خیلی قشنگ شماره گذاری می‌کنه و عنوان بده عنوان در عنوانشون عنوانش چیه تا صفحه 178 این چند صفحه اکتفا کردن به مومشری از کلام از اقوام هم همین دو تا باور رو ایشون آورده و از صفحه 178 عدله حجیت خبر رو بود مصفت اون وقت تمسا کردن اقتدارن به آیات مجموعه آیاتی که ایشان او رو اول آیه نبعه که خیلی طولانی بحث کردند آیه نبعه رو از بقیه آیات طولانی تر بحث کردن و قبول هم ندارن خیلی طولانی این ایشان البته در زیر آیه نبه دو تا اشکال عمومی هم هست بر خود جید خبر که به طور کلی اشکاله این اشکال عمومی رو به سه این دو, دو اشکال معروف رو از سفه دیوی سوی یک آوردن در غیب آیه نبه آوردن خب ایشان موضوع که این اشکال احساس با آیه نبه نداره فکر خب هیتر آوردن این دو تا اشکال همومیست یعنی آیه نبر رو تا صفحه دیویس دویس تمام دویس از صفحه دویس دو تا اشکال کلی به حدیجیت خبر واحد میشه ای تیش مبانی شیعه است این همون اشکال اخبار محلوات هست البته ایشون سعی کردن جواب بدن و ما توضیح خواهیم داد که اینا مرموم استاد و دیگران اصل اشکال اصل اشکال اخبار מעال واسطه مال از است. عقلی گراها اونا معتقدند عدل الهی به خبر تبعی خبر نمیشه درست باشه مشکل داره به درد کارش نمیخوره. ایشون هم جواب دادن از این اشکال عبور دادن البته ما هم وسط دنبال قائل و مصدر و کلام کجا بوده و مطلع چی بوده نیستن اشکالاً حالا به همون ذهنیتی که از کتاب رسائل برشون آمده و ایشون متعرض این بحث میشن توسا اشکال اخبار و معل که اینشالله از ساییم کرد که اصولا اشکال اخبار و معل رو در کتابهای ما خوب منعکس نکردن و این جوابهایی که داده شده اصولاً اساس ندارد اینشالله در محل خودش بعد آیه نفر رو هم از صفحه دیلیس و سیزده از طرفی طولانی آیه نفر رو صحبت کردند. آیه نفر رو صحبت می کنیشون آیه نفر رو بالاخیر قبول میکنه، با یک عدم قول به فصلی قبول می آیه نفری من فقط همین دو توضیح بدم در کتب اهل سنت غالبا همین دو تا آیه آمده و همینطور که دیروزم اشاره کردم امثال ابنه هست فقط آیه نفر رو دارم آیه نفر رو ندارم بحث این بیشتر رو آیه نفر که بعد انشاءال توضیحاتی خواهمدار روشن کرد در بعدها اضافه بر این دعایه به شمع آیه دیگر هم شده از دویست و هیجه آیه کتمان مطرح کردن دویست و نونده آیه ذکر مطرح مفرح کردن دویست و بیس آیه به اصطلاح ازم, آزم خیر روی امینو بالله این هم مجموعه بر آیات پس دو تا آیات دو تا آیه اساسی است علا اختلاف بین این که کدومی که اساسی تده ازدهی آیه نفر و اساسی تن نشار در زبان شیعه آیه نوه باشه من میخوام اجمالی عرض بکنم که احاطهی به کل بحث مردم و استاد پیدا بکنید و چون بعد از کتبی که بعد یا شاگرده ایشون یا شاگرد همین راه ایشون رفتن که این دیگه توضیح کل راه باشه ایشون در صفحه دیویست و بیست و, و دو متعرض روایات شدن و میمونستردنگیم می خاشی عنوان ندارد چون عنوان نداره من مجبورم بگم که آن بخوان تناسه خودشون عنابی نبید میسن که راحت تر باشه برای مراجع و چهار طائفه از روایات شما به بعد میشه باشه در روایات اهل سنت به بعد شما به شیعه رو اشاره کردیم به چهار طائفه از روایات تمسترد میکنن که تقریبا ایشون قبول دارن تقریباً حالا اجماعاً قبول است در صفحه 227 متعرض که به اجماع میشن پس یک آیات و روایات سه ایجما که اجماع شیخ طوسی و این اجماع رو هم پنج وجه تقریب میکنن اجماع رو و اشکال میکنن در صفحه 229 یواش نواش از اون دلیل اجماع منتقل میشن به سیره سیره اغلا چون از دردشون سیره متشدهه بود ایشون از سیره متشدهه منتقل میشن به سیره اغلا که صفحه 229 این شاپیسی دست منه منتقل میشن چون میگم عنوان ندادن عنوان ندادن لذا من می بکنم بله در اینجا الا ان نه ولای الشف عن خبر حجه تعبدی لان عمل المتشرعه به خبر است قبلم به ما متشدد به ما اوغلا از اینجا وارد سیره اوغلا میشن بعد از اجماع وارد سیره اوغلا میشن و این سیره رو ایشان قبول میکنه که نه امج ایشان در حجه خبر سیره است اصلا متعرضون اشارات معروف بگیرند سیره است و حاصلش اینه که این سیره رد شده یا نشده پس از صفحه 229 تا بیشون متعرضض دلیل چهارم که سیره میشه و یه مظی شهر میدن که آیا حجت هست یا نه سیره و رد شده در صفحه 233 آخرش سالم ان این در صفحه دویست و سه چون بگم ممکنه آقایون که نشه و در صفحه دویست حدود خود جیهتو. میگم عنوان نداردن شما در که خودتون عنوان بزنید خیلی لطیفه که بحث روشن بشه سر تربستان از بحث بحثا طولانیست و بیا عنوانیم آدم مثلا گیج میشه کی چی دارم میگن در صفحه دویست متعرض حدود و شدن صفحه حدود خود جیعیت باشه. ولایت با انمو این با دیزه حدود حجی یعنی حجی و اون این که ایشان البته تعریف میکنم احتمال میدم این مبنای سابقی ایشان بود حالا احتمال منه چون قطعا خود من بوده هشت سال درستی ایشان بودن و قطعا خلاف مبنای قطعی ایشان در فرق بودن که احتمالا ایشون میگه مقتضای سیره حجیت صحیح و حسن و موسفه چون ارز کردم یک تقسیم ربایی هست که حدیث اگر جمعی ربایتش امامی باشن و ثقاف و عدود باشن سریع میگن اگر جمعی اصلادی ها نفر امامی باشن من ممدوح باشه این توصیح نشده باشه حسن میگه اصلاح علام هست ارز کردم از کردم اینا اشاره در بحث کردیم که حسن اصلاح چی بوده چی بوده اشاره کردیم شد توضیحاتشو بعد ارز که و اگر یکی از رواد یا تمام رواد غیر امامی ولی که سره باشن موسطقه میگن در غیر این سر صورت ضعیف میگن این است که مرموم علامه قدس الله نفسد ایشون که محتضای سیره صحیح و حسن و موثر هر سر جده این دارد. دارد این را هم ایشون در آخر مطلبشون اووردن این حدود حجیت یکی که از بحثای مهم هستن که ما اگر ادله یک و جیعتمون رو, رو رزو کنید برای چه قسم خبر هم بعد بعدم متعرض این شدن که خبر ضعیف با عمل مشروع یا نه اون در صفحه 2335 و به بعد باز متعرض شدن به برس میکنید میگم بس این قسم کتابیشان مبهم نوشته شده چاپ شده ممکنه سر درمه یاردم اون وقت البته اینکه حالا چطور سیره اوغلا میاد خبر امامی مندوح رو قبول میکنه خودش فکر کنم او حالا ایشون ما اشتباه تاکونه باشه ان خیلی شره ایشان عجل که این بچا سیره اوغلا رو خبر سره است که ایشون تو آکادمی اون که مو ازشون شرارن میاد 8 سال متوالی من درس ایشون بودم البته یک سال آخرش با فاصله بود چند سال که دو سالی با اومدن بله از این چند سالی که ما در بودیم قطعی بود که حدیثه حسن چون حدیث حسن رو قبول نداشتن چون مبنای اینا واضحه مقدماتش هم واضحه ایشون میگه سیریه و علاطن سیریه علا در خبر ثقه اگر باشه ایشون هم اصرار دارن که اوغاد خبر ثقه او امامیه مندوب هست بوده در این یاد شیعه باشه مندوب باشه چی سیریه اوغاد واضحه یعنی خیلی مطلب از نظر من بدیهی و روشنه و لذا مرحوم استاد خبر صحیح و موثق رو قبول داشتن ای تو این زهاره قطعا اشتباه. اشتباه چاپ خانه از ایشان, ایشان به ربایت صحیح یعنی مهم پیش ایشان امامی بودن و عدل و این حرفانه بود مهم اینه که توصیق باشه, باشه. توصیق هم ارض کردن مهم پیش ایشان اثبات بساقت بود حالا میخواد توصیق خاص باشه نصد امام باشه تعاویر توصیقات آمه باشه ایشان به دنبال توصیق بودن اما این که قرار امامی باشه و ممدوح باشه خبرش قبول بکنی خیلی بعید اله می‌ذارم به قطعی که من دارم که این اشتباه چاپخانه از ایشون چن ایشون حزله تعبیر به خبر حسن ابتداش از علامه است اصلا ما قبل از علامه نداره اینکه اصلا راحت بشه خود علامه خبر حسن رو مطلقاً قبول نداره حالا من توضیحاتیشو بعد ان شاء در حدود خبر علامه در خلال کتاب مختلفش خیلی جواب میگه ودنها انهو خبر دقید اونا خبر خبران حسن ولا معارض له این مبنی علامه رو خوبش کنید موسطه رو قبول نداره علامه علامه صحیح رو قبول داره حسن رو اگر معارض نداشه باشه دقیق کردیم خبر حسن اگر امامی ممزیم نعبو بکنه معارض نداشته باش ولذا گفتیم لازمه کلام علامه دو درجه از حجیته یکی حجت و مطلق یکی حجت نسبی. لازمه این کلام اینه دیگه یک خبر مطلقا حجته با اون صحیح یک خبر مطلقا حجت نیست با یک خیلی حجته اگر معارضه هست اون خبر حسن بعد از علامه ادهی از خواه های ما چرا به حسن هم عمل کردن ظاهر صاحب معالم این طوره و لذا صاحب معالم کار خوبی هم هست همون کاری که امسال مثلا فسن بخاری و دیگران انجام دادن شما هم الان هاشون تو این کارو انجام بدید همین اخیراً که از علمای اهل سنت دو تا سلسله حدیث نمیشه که سلسله احادیث صحیح ادن 13 جلدیه ما البانی سلسله احادیث ظریفه که نوشتن 12 جلدیه شد نداره مرد مجموعه 30 جلدیه 30 جلدیه تمام قطعیه هست خب زعما دیگه شده این تو یه هم اینطور بوده و این کار خوبیست سلطه ای احادیس رو نسان جمعی کردن همده پسر محوم شیدستانی سامواله منتقل جمان نوشته که واقعا به نظر من کتاب رو بسیار خوبیانم کتاب در حوضه ما منتقل فل تل احادیس سحاه و الحسان ایشون در هر بابی در کتاب است. مثل سلطه احادیسه این البانی فقط حسن هم بشه اضافه کرده از سحاه و الحسان اون وقت چون خودش به اصطلاح مبانی خاص داره دو تا صحیح رو قائده صحیح اندی و صحیح اندل مشروع دو تا حسنان قائده حسن اندل مشروع و حسن اندی این دو تا اندل مشروع و اندی از زمان علامه تا ایشان آفیاد نا که مشروع سر از قرن هشتم تا قرن دهان تقرد که یه مشروع از زمان علامه تا ایشان خب هم کتاب خوبی متأسفانه ایشون فورت میکنن حدود کتاب حج ابوالحج داره بقیه ابواب چه نداره مخصوصا ایشون یه نسخه تحریر به خط شیث میشه من بوده این خیلی نعمت بزرگه ای کاش ایشون نسخه اثر نسخ می خیلی بوهم بود انصافا یکی از مزایای مهم این کتاب مونترجمه ها غیر از اینکه حالا روی احادیث حسنه و سغه انده و اندل مشهور رو آورده که واقعا کار خوبیه این کار الان همش کار خوبیه کل سه ها موسطقات حسام و زعافال اگه حسن قبول میکنه اما برادر یا داییشون یا دایی همشهزاده یشون مرموم صاحب مداره ایشون فقط صحیح را عمل میکنه نه به حسنه عمل میکنه نه به موسطقه مثل آقه به صحیح و موسطقه هر دو عمل میکنه خب گفتیم مشهور و علما هم پیما بعد غالبا همون رأی محقق رو گرفتن که دی دوباره صحیح و موثق و حسن نبودن اون خبری که اصحاب بش عمل کردن بو عمل میکنه که طرح میش که من طرح میکنم اینا مختصر مغانی من موسال ایشون فرمای ولای اف که مقتضای سیره حجیت و صحیحت و حسنت و موثقه عبارات پیدا کردن این مطلب درست نیست اولا فی نفسه باطله است سیره اوغلا بحث حسن نداره من احتمال دیگری میدم. گفت که چون من به كلام حکیم و انا احترام مقام استاد شد نظر مبارکش رو ایده زیادی از روایاتی بوده که مشهور حتی خودشون ایشون توی کتاباشون کتاب قدیم میشون نه کتاب جدیدشون تعبیر میکنه از روایات به حسن بن حسن از زراره. این داره ما و حسن بودنش به این بود که در صدرش ابراهیم هاشم بود به قد ایشون شاید مخاطب بیان این روایت هم حجته شد مرادش شی ما بعد ایشون قبول کردم رو واسه اما صحیحه می دونن خب میدونید شما به تعبیر خود ایشان من این تعبیر دارم درینی میگن ارقام پیش ایشان که بدی خدج درستی نداره ایشون میگن یعنی ابراهیم هاشم بزرگ تن راوی در کتب اربعه هستی بنوازه در کتب اربعه رو بعدا در ترجمه ابراهیم هاشم ملاحظه کنید کسی بنوازه ایشان در کتب اربعه خب روایات اگه تمام سر معتبر و ثقات و عدول و امامی بودن به خاطر ایشان بودن حسنه حسنت زراره حسنت عبدالرحمن از نه حجاری متعارف بود شاید مراد ایشان از این, این جور اینجور رو باشه که مشهور گفتن حسنت و ایشون سعیل میتونن توجیه گنه می باشه میزه عبارت ایشان شاید مراد ایشان این باشه و هر حال این مطلب که در کتاب ایشان آمده نه با مبانی ایشان میخوره و نه با خود دلیل ایشان میخوره چون دلیل ایشان سیره حتی حالا امامی مقتدر اصل اوغلا رفت به امامی و شیعی و سنی و اصلا اشری باشه و سنی باشه کاری خرید این جان اوغلا این حال نگاه نمیکنه علایم کار اگه بخوره حسنه به موثق مثلا سری متشرعه ممکنه او سری اوغلا که معقول نیست و ایشان هم که قائل به سیره اوغلا این هم در صفحه 234 وقت در صفحه 235 به بعد هست متعرض به اصطلاح بحث انجبار و انکسار میشن تا شفه 237 این بحث هم سابقا در اول بحث خبر بیهی مناسبتی ما خوندیم از این که خبر ضعیف با انجبار قبول میشه یا خبر صحیح با اعراض منکسر میشه این هم در این دو سفهونی متعرض شده اون وقت بعد از به اصطلاح این ای که اقامه فرموندن به عنوان مثل ثفت دلیم که یکی کتاب و روایات و اجماع و بعد سیره اغلا سیره اغلا رو زیر اجماعیشون رو آورده بعد حکم عقل از صفحه 237 اشون متعرض شدن من مستوزه لبیه علا خجیت الاخبار الموجود فی الکتب المعتبره حکم العقل هینم متعرض حکم عقل شدن که خب متعرض شدن و جواب دادن و آیون مراجعه ایتان معلومه حکم عقلیش این بیدمت جا بیشون می فرمند و حتی متعرض حکم عقل و اون مقداری که اخباری ها متعرض شدن که متعرضان متعرض نشدن تا بحثایی بله متعرض تا صفحه 251 که دقیقه چهارا بر حکم عقل معروف است به این صدا از صفحه 351 تا آخر متعرض انصدار و تنبیهات انصدار شده این خلاصه ای کل کلمات و استدلالاتی رو که به اصطلاح مرموم استاد اصطاق راجع به این مددد. البته من دیگه حالا اگه یه مردار از مطالب مقدمه بیسون رو متعرض شدیم الروز ایک توضیح مختصری عرض میکنیم ایشون در ارسن در صفحه 177 که متعرض بحث و حجیت شدن یه حدود دو صفحه ای تا صفحه 173 یه وقدنده‌ای می‌چینن در این که آیا خبر واحد در سوجر تبویذ ذرات اصول هست یا نه اصلا تو یه بعد ایشون میگن بله بلکه من اهم ابحاث اصوله چون مسائلی که ما در فردش مراجعه به خبر می‌کونیم اکثریت فقه اون مواردی که تواتر از یا قطعیات یا یقینات نماز پنج اینا کم اندرده مؤذر اوافق با خبر واحده وقتی این درست به اصطلاع جزه اشکالی که بود البته خود ایشان فل اشکال و فی منها نظرا الا و موضوع علم اصولیه لده در فرحیقه اشکال اشکال این ایشون در خلال کلام سعی کردن جواب بدن از اشکال اشکال ارز کردن که رانه مراره ببینید اولا در ذهن آیان این بوده که هر علم مسائل علم عبارت از به اصطلاح محمولاتی هستند که بر موضوع علم بار میشن مثلا فرست که در تب که بدن انسان موضوعه آیا تب چه کار میکنه؟ آیا مرض فلان چطوریه؟ آیا فلان غذا چه اصلا؟ اینها همه ناظر به بدن و خالات بدنه و در این حالات و محمولیاتی که ممکنه بار بشه آمدن بین عوارض ذاتیه و عوارض غریبه فاصله انداختند و تاکید زدن که در طب ما باید از عوارض ذاتی بحث بکنیم نه از عوارض غریب مثلا اگر فرض کنید شخصی راه رفت مقدار زیادی و خسته شد این تو تری نیست چون هر موجود زنده‌ای هر موجود مثل حیوان اونم راه بره خسته میشه هر میکنم اگر اروزش بر انسان به لحاظ یک به حساب موجه می باشه مثل حیوان این منشه حوادث غریبه است نه جزء حوادث ذاتیه غذا اشکال میکنه حالا بعه حال یک بحث کلیتری مطرح شد که اصلا این تقسیم حوادث ذاتیه و غریبه به این منهاجی که در بین قدما یا با اول خود شما بود درست نیست ما حتی خستگی بر اثر هم جزء حوادث غریبه میذونه ذاتیه میذونه یه بحث اینجوری شد که اجازه انجیننس یه بحث در شد که اصلا کی گفته عوارض ذاتیه ببین عوارض بود ذاتیه بهشون خدا باشه این دو تا بحث بحث سرور می یعنی بحثا که یعنی بحث این در ساک پیشاورد وقت نکته این شد که ما در اصول موضوع ilmu ما چیه گفتن عذله اربعه گفتن خب موضوع که میشه مرکب باشه گفتن دلیل دلیل شرعی فرض کنیم با بشه خیلی بعد مسئله اصولی جزء عوارض موضوع باشه عوارض موضوع کتاب و سنت است و عقل است و اجماع این که خبر زراره جزء عوارض موضوع نیست جزء عوارض کتاب نیست جزء عوارض سنت نیست جزء عوارض اجماع نیست جزء عوارض عقل نیست چطور این رو شما بحث حجیت و قرار ده؟ غذا اشکال اینه آخوئی از این اشکال جواب داره این عدنان اشکال آن الاحص موضوع علم اصول فیحا. لا من درنل التزام ریشون لا بوذ گفتن در اوائل جلده اول بحثا شد این لا بوذ نشون دیگه یعنی قائل نیستن من نمیخوام وارد اون بحث بشم موضوع علم الاصول امر و جامع موضوعات مسائلی لا خصوص العدلت الاربع لانه لم يضر عليه دلیل من آیه ولا روایه ببینید این نحوه استدلال نظر علیه دلیل من آیه و روایت شان موضوع اصالت نیست اینجوری این بحث علمه این اصطلاح اردویشون فلسفه علمی این بحث های مستقلی درباره حقیقت تخمین بندی علمی واسه اون درشت به آیه نداره لا اله الا الله آیه و روایت چی <تصفح> صحبت آیه شان این بحث آمد تو حوزه ایشون که آبرنما تو حوزه بود آیه و روایت باشه این بحث اوغلا نیست اصلا نداره یه بحث در دنیا علم الان هم در دنیا غرب مطرحه فرمان میکنه بحث آیه و نیست این یک دردش هم این امران جامعان یعنی چی این شبیه کلام سارکپای است که گاری موضوعی یک علم یک امر جامعیست اسمش هم نمیدونیم این چیم است که اسمش هم نمیدونیم فقط میدونیم این هست این مثل شبیه علمی این اینجور تفسیر کردن علم درست نیست حالا اگر ایشون برمو استاد به جه امرون جامعه می موضوع موصول حجت لها هم. نه رو کنن از که در کتاب علومش من چون خودم یه موضوع مقصد موضوعی نهیدن موضوع موصول رو حجت می دارن. خب شما به جه امرون جامعه من در جمعی موضوعات مسائلیهی خب به جه حجت وقت بعد یعود داره اشکال من نفسه که خبر واحد چطور بحث از عوارض حجته چون حجته یک کتابه یک سنته یک عقل یکی اجماع هم بحث میگه، اشکال بر این یک جواب اول استاد ها و بنا بر التزام به لزوم موضوع به کل علم هر علمی موضوع میخواد و الا و صحیح فضا موضوع علم اصول اصلا علم اصول موضوع نداره البته بعضی ها سر کردن جواب بدن که انسان هر بحثی هم که انجام میده باید موضوع باشه شما بخیدیم مثلا این رو صحبت بکنیم بدون موضوع صحبت یعنی حالی چیده که صحبت ما این صحبتی کنیم خب نمیشه که ایشون میگه تلا موضوع لا علم الاصول اصلا و علمیت علم لا تتوقف علا وجود الموضوع علا ما تقدمم تلا و لذا منزی از شاگردهشون اعتراض کردن که اصل بحث واحدن موضوع میخواد چه برسه به اصول البته این اشکال که بحثم موضوع میخواد این با مباحثی که در علم فلسفه برون موضوع است چیز دیگه‌ای است اصلا این ثوابت علی این کیفیت ماکان چون کلمات ایشان متأسفانه از جا باز هم واضح نیست ما توضیحاتش ارث کردیم مسئله علوم حقیقی قطعاً موضوع میخوام امکان نداره بدون موضوع علوم حقیقی مسائلش باید موضوع واحدی هم باشه البته این که تعدد موضوع میشه آنه بناشون در دنیای علم اینه که ممکنه موضوع مطلب واحدی رو از جهات و حتی حیثیات و جهات مختلف علوه مختلفی متکفل بشن پس مثلا ما اگر بخیم زمین شناسی رو به لحاظ تقسیمات فرسن سیاسی بگیریم اسم شمزهی بکرغرافیه اما به لحاظ زمین شناسی اسم زمین مثلا زمین شناسی علم دیگری میشه خود بدن انسان اینطوریه پس علوم حقیقی قطعاً موضوع میخوام امکان نداره مسائل باز حول موضوع واحدی باشن و بدون موضوع امکان نداره بله این مسئله‌ای که ایشون فرمودند موضوع الهییت ال علوم اعتباری موضوع نمی‌خوام این درسته این قبول کردن این حق عازی اسد الله است و از کردم که مرحوم استاد و ما وقتی به نظر منم گفتن با عازی اغاز قبول شده استاد نظر ایشونو گرفتند این مطلب درسته. علوم اعتباری موضوع نمیخواد. اما علوم اعتباری هم به هر حال نقطه علمیت میخواه. این تو میدونیم پت و صحبت ما از کردیم علوم اعتباری میارش به اقراضه. و اهدافی بیدن اون ایف هست. داره موضوع نیست. این درسته. ساب کفایه در جمعی علوم میگه اهدافه. اونم درست نیست. آن خوییم این هیچه علم موضوع نمیخواد این هم درست نیست اینی که گفتن همه علوم موضوع میخواد مو حتی علوم اعتباری ما برگریم برای علم و موضوع, موضوع پیدا کنیم این هم درست نیست علم اعتباری که امور، در اعتبار را فهم میکنه این طور که واقعیت داشته رو شید یکی ممکنه که درستی یکی موگین درست است این باشه علم اعتباری از اون درست که ما فهم صحیحه نشه؟ مثلا پس بحث از رجال یه بحث ممکن ممکنه اصلا کسی اعتباریش به رجال نداشته باشه دلوقتي دلوقتي بحث از حجیه چون حجیه در امره اعتباریش جامعه هست اگه جامعه نباشیم حجیه همه مناده میشه علم اعتبار. اعتباریش آقودون ندازه از هم... از خب حالا بزنیم بعد از بحث نگرم چون بحثمون طولانی شد پس این مطلب صحیح در علم اصول صحیحه الموصل زودو مے اصباری موضوع نمیخواد حق بحث کردن که اهداف و غایات درش معتبر خود دقت بکنید به نظر ما حق با استاد و مراد بوجمدی و آزیان همین مردان قبول کردن علوم حقیقی موضوع نمیخواد اما مثلا نه اصلاً موضوعش کلمه و کلامه مرحوم مشیل در حاشیهش نمیشه نه چون کلامش تا دو تاش نمیشه موضوعش از لفظ عربی است مثلا موضوع نمیخواد ابن موضوع نمیخواد علم نر، علم فقه، علم وصول، رجال، فهرست اینه موضوع نمیخواهی اینا طبق احراض و نظام توسعه پیدا میکنن مثلا رجال یه مدتی سر وساقت بحث میکردن سر قصد بعض سر طبقه بحث کرده میشه رجال؟ بعد سر اشتباه مثلا اسم این حریضه یا جریره یا جریره این ها میجه رجالش کنه داره چون موضوع واحدی نبود موضوع نیست محور میخواد محور حیات قبول دارید محور میخواد چیز از موضوعه لازم اون کلا موضوع بلا ای آقا فرض بگیریم موضوعات دیگه از, آه، آه، آه، آه، از هرام دیگه دیگه, دیگه, دیگه, دیگه, دیگه اداره موضوع نه خیر که من دارم مثلا فرض ما در رجال کاری به تراجم ندارم اما یه بحث در رجال گیر میکنیم برای شناخت به پیدا میکنیم لذا علم رجال داریم علم تراجب داریم تاریخ داریم نه علوم مختلف هست انصاب داریم اینا زوایه های مختلف هست یکی نیستن سیره داریم اینا هر کدوم یه علم از یک جهد دقت دقیقا تبقه اغراض من اغراض رو معیم می کنن. راست این مطلب درست و اگر کردیم اغراض در علم اصول بهتر بود استاد از این را خواهد این حرف هایی در این سونه نیده از, از در علم اصول حالا من بقیه کلامی شده بخونم آز... جوابیشون رو بدن بعد باید کلم بقیه کنم از در علم اصول با تصبیه که در اصولی کده از قرآن هول حجته یعنی عنوانش حجته لیکن حجتم یکی این اشتباه نشه ما در اصول باز دو تا حجت داریم یک حجت همونی که ما بفاس مثلا خود پیغمبر اکرام سنت پیغمبر حجت به معنی این که پیغمبر حقه تشریفی داره پس ما گاهی میگیم حجت یعنی مصدر تشریف در اسلام مصدر تشریف به طور طبیعی دوهاست کتاب و که سنت از که این در زمان عمر خاصه که ایم اضافه شده یکی اجبا شون اهل حل و ارد بوده یکی هم رعی رعی هم عمر اضافه کن که قیاس باشه فیلم آورد اصمیشون قیاسه پس مسادر تشریع دو تاست او دقیقی ها دید دو تا هم بعد اضافه شد شد چهار در این در کهی شد بحث از حجت در بین صحابه از مسادر تشریع اشتباه نشید دو تا ماهیت هم دارن از قرن دوم که مباحث از قرن اول سه مصرف شد تا عواست قرن دوم و عواقب قرن دوم نحله استدلال فرحی دقیقی حالا اسمش استلال بگذاریم استدلال بگذاریم احتجاج بگذاریم در اینجا که مطرح شد؟ بعضی آمدن گفتن حجت. در اینجا حجت یعنی دلیل، نه در تشریع. مثلا مالک میگه بابا کلان چیز مثلا ابو حنیفه میگه وضو محافظه طهارت در حال Salat، ابو حنیفه قهرره رو در حال Salat ناپذیره، در غیر حال Salat نمی‌ذاره. چرا؟ یه روایت مرسل گفتن آقا این لباس نیست، این گفت حجت، حجت هست؟ حجت نیست روشه شد پس موضوع و لذا فی ما بعد در کل کتب و اصول اهل سنت مهور بحث اینه اهداف اصلی بحث اینه اگه حالا میشه موضوع به خلیشون با مهور رو دیموندون یکی خب <تصفيق> ببنیست <استفره> پس یکی عبارت از حجت به معنای مستر و تشریح. یکی عبارت از حجت به معنای طریق دلیل اگه شکر الان شما کتب اصول اهل سنت نگاه بکنی که اولا اونا نمیش داریم بعد اینا بحث ها رو در این جدیه هر قرار دادن بحث خبر واحد مثلا بحث قیاس بحث خبر واحد بحث اجماع بحث اجماع پیش اهل سنت از قسم اوله جز مسادر تشریعه پیش چیه از قسم دوم قرار شدن طریق اصوری خوب دلیل گفت اجماع حجب چون کاشو از قول بود دقت کردن چی شد پس با خوب دقت بکنیم حالا بقول راهی موضوع هم بخوایم موضوع میگیم شابیه گفته موضوع موضوع به این اما این اساس نبوده اساس مطلب دووال مصادر تشریع مثلا همینجا مختصرا بگم چه این خیلی نافعه و خیلی برای شما مفیده کلا مصادر تشریع در شریعت مقدس ما داریم کلا در بین های اسلام کلا زیدی و ملی و سنی و به دو قسم اصلی تقسیل میشه یکی ادله به اصطلاح خودشون دلیل سمعیه یکی هم عقلیه عقلیه در مقابل سمعی در مقام دلیل سمعیه هم دو تاست یکی کتاب و سلمه این تموم شد و بیشترین بحثشون در دلیل سمعیه هم رو سلمه روشن شد و در دلیل عقلیه هم اعتبار البته در خلال به اصطلاح سنت چون بحث این بود که کاشف از سنت و احادیث بحث کرده چیزای دیگه هم اضافه شد مثل قول صحابی این اضافه شد قول اهل مدینه اینا زنگش سنته قول اهل سنت جز جزء ادله است عدله عقلی هم دو تاست اساسش یکی اجماع که قیاس اساسش دو تاست اما بعد اضافه شد در خیلی بدعه نو اینا جز به های مهم دنیای اسلامه که حتی الان هم قده از علمه های اسلام در روش کار می‌کنه، مثل فرض استحسان استحسان از خدیم از زمان صحابه عبدالله مسعود شروع شد مثل فیغمبر در اساس ندارد اما استحسان رو توضیح داریم تصاداتا من چند بار توضیح میدم چون یکی از راحل های مهم علمه اسلام در حل مشکلات امروز استحسانه نمیم دقیقه کردیم نه؟ استفسار چیه؟ استحسان این اینه که یک جایی و یک مطلبی تو جامعه اسلامی جا میافته، مردم قبولش دارن، ما میگیم به جوابات دینی نمیشه، با جوابات دینی درستش کن. این اسمش استفسار. میان قبولی بکنیم مثلا بانک. الان نظام بانکی مشکلی دیگه. میگه در کشورای اسلامی نظام بانکی جا افتاده، یک مقدارش ردوی و نروک بحثولی مشکل داره نظام بانکی. ولو از نظر شرعی ما درست بکنیم کپ دفاع بکنید و رو با عدله شرعی در نیاد همین که بین جامعه اسلامی جا بیفته و قبول بشه این کافیه که این الان یک کارایی زیادی داره در زمان ما چون خیلی از مطالب تمدن جدید آمده تو جامعه اسلامی جا افتاده نکته‌ای هم بارش پیدا نمی‌کنه مثل تو همین ایران ما رهن میگن یعنی پول رهن برای ساختمان و اجاره و فلان بگیم همین که بین مؤمنین جا افتاد و قبول کردن همین کافیه من رو طبق شواهد شرعی نبس درستش بکنیم ببینیم استحسان هست صد و ذرایع هست که الان همونش کار میکنن صد و ذرایع مثل مقدمات هست. شبیه اونه یعنی صد و ذرایع ما اگر بدانیم یک مفصدهی برای مثلا اباد و بلاد پیدا میشه اون چه که منجربه اون میشه جلوشه بگیریم مساله مرسله هست اینا جز ادله عقلیه است که بعد اضافه شده یکی از شورا که اگر مثلا جماعت اسلامی جمع کدن و مشارت کنن برای گیری شد و اکثری یک چیزی گفتن قبول بکنن خوب دقیق کنید این شورا ولی الان توی مثلا خبه ما اصول ما خیلی بشت از کنن در کتاب محلای نهز شورا رو که از عدلی که از سلام مسادر تشریح آورده ببین پس مسادر تشریح کتاب و سنت اصله یه دو ستا تا فرق داره دو تیران دلیل لغزی روش میگن دلیل لبی یا دلیل عقلی دلیل عقلی اولش قیاس اجماه البته این بی این معنی است که حتما اجماع عقلیه صرف باشه از دیگر مواطن اجماع شرعیه نگم خداوند نه قرار داده وقتی خب مشهور این دوتا عقلی گرفتن چون منصول سریع نیست بعد از این دوتا استحسان صد و ذرایه مساله مرسله و شورا شورا به همین معنا که اصولا اگر شورا که قبول تن با قبول بکنید بیدید این هم که خیلی اثر داره کس بنابراین این قسمت اول اصول قسمت اول اصول مساجر پشه قسمت دوم اصول تورن اصول ما مثلا قراعت شازه قراعت شازه مصمد کتاب هست میشون بگیم آیه کتاب این از همون کتاب شروع بیشه خبر صحیح مصبت سنت هست یا نه فرصا اجماع اهل مدینه کسی که تاریخ میگونن اجماع صحابه قول صحابه امرنا رسول الله امرنا بکدا این خودش تاریخ هست به سنت پیغانده پس بنابراین صحیح این است که ما در علم و اصول کلا اون اساس بحث ما اساس اساسیش بحث حجت طبق این اقراضی رو که تعریف کردیم موضوعش هم حجت معنای معنی واحد نیست دو تا معنی حجته هم از مسادر تشریح تو اصول بحث می‌کنیم. چرا حالا از مسادر تشریح و طلق بحث میکنیم چون اینا در قرن دوم به این نتیجه است که اگر این مباحث تنگیه میشه مقدمه فقه پس غرض قدرت بر استنباد بود غرز استظهار در فقه بود اگر این دو بحث رو شما تنقیه بکنید یک مسادر تشریف دو طرق وصول به مسادر شد با, با تنقیه این مواهد شما قضاقه بر استقباط فقید پیدا می کنید پس هدف اساسی این صحیح الان به حسن روزا با میگیم محور شد یا موضوع شد مثلا لکن هدف اساسی این بود در قرن دوم گفتن ما مجموعه از مطالب رو جمع می در یک جا اسم می کنیم اصول فرد زیر بنای فرد برای استظهار فردی شما به این نیاز داریم به این احتیاج داریم این رو به دو بخش اساسی تخصیل کردن چند شد؟ مسادر تشریف مثلا اجماع که من روم آن خود متعرض شدن پیش اهل سانه جوز مسادر تشریف شد پیش ما جوزوی اگر قبول بکنیم که ما قبول نکردیم طرق کشف قول امام صلی علیه محمد.